تا آن این ماندم یادم نیست. در هر صورت دیر وقت شده بود. رجبوف با پدر مارگریتا در اتاق پهلوی نشسته بود. آخر رجبوف آمد از من خدافزی کند و من فهمیدم که باید بلند شوم. قرار بر این شد که من هفته شش شبانجا بروم. یک شب من روسی یاد بگیرم و یک شب من به او فرانسه درس بدم. این اولین ملاقات من بود با مارگریتا و از آن وقت به بعد من تقریبا همیشه یعنی هر شب تا ساعت ده و یازده مگر بعضی شبهای جمعه با او بودم. لازم به گفتار نیست که دیگر زندگانی من صورت تازه‌ای به خود گرفت. فکر من فقط این بود. چه کنم که دلپسند مارگریتا باشه؟ یک مرتبه به من گفته بود که او از آبی کمرنگ خوشش میآمد من دیگر تنها بیرانه های آبی رنگ پوشیدم تمام پیجامه های من آبی کمرنگ بود یک مرتبه به من گفت به نظر من با موهای سیاه و چنگوری و رنگ گندم گونه شما رنگ قهوه‌ای جور است من دیگر لباس های قهوهی مایل به سرخ تنم می کردم. یک مرتبه در همان روزهای اول گرره کراوات مرا که بیت ترتیب بود محکم کرده و من همیشه مواظب این نکته بودم. او موزیک عالی دوست داشت و من از این هیز تربیت شده نبودم ولی سعی میکردم ذوق خود را تربیت کنم. صفحات گرامافون می خریدم. چندین کتاب راجب موسیقی خریدم و خواندم. حتی باکی هم نداشتم که از خود مرگریتا نیز بعضی توضیحات بخواهم. او از رجبوف خوشش نمیامد. از این حیث من روی دست او بلند شده و از او بدم می آمد. هرچه من بیشتر فریفته و دلباخته مرگریتا می شدم، بیشتر از او متنفر بودم. یک شب، پس از آن که در تمام شد، او از مرگریتا تقاضا کرد که کمی پیانو بزند. مارگریتا نگاهی به من کرد لازم نیست بگویم که آن شب خوشبختترین شبی بود که من در زندگانی در آزادی به سر بردم آن نگاه معنی نداشت میخواست از من بپرسد من خسته هستم اما اگر تو بخواهی حاضرم برای خاطر تو چون تو را دوست دارم موزیک بزنم و اگر تو نخواهی حتی حاضرم تقاضای این رجابوف عرق را رد کنم نه اینطور نبود من از نگاه او این استنباد را کردم آه نه این مالی بود که به من دست داده بود من خیال می کردم که او را دوست دارم من این نگاه ها را به میل خود تعبیر می کردم چندین روز چندین شب فکر من فقط دور این نگاه گرد می زد. من هم به او نگاه کردم اما طاقت نیاوردم. وسط ابرویم یک مرتبه جست زد بالا. شاید تمام این عالم را من پیش خود تصور می کردم. مارگریتا یا خسته بود و یا اینکه که نمی خواست خواهش او را بپذیرد. مارگریتا در جواب گفت من خسته شدم چشم. بعد برایتان می زنم. بعد باز اصرار کرد، به طوری که نزدیک بود اوقات رجبوف ترخ شود، آن وقت پدر مارگریتا مجبور به دخالت شد، او را مجبور کرد، پشت پیانو بنشیند. من اوقاتم ترخ شد ولی باز تعجب کردم که چگونه رجبوف یک مرتبه آن قدر علاقه به موسیقی پیدا کرده است و اتا خیال کردم که واقعا احتیاج به موسیقی پیدا کرده است. چقدر بیزار شدم وقتی دیدم که در همان اینی که مارگریتا آشفته و عصبانی روی پیانو توپ توپ می کرد و چندین دقیقه ادامه داشت او سی و دو مرتبه خمیازه کشید نه مرتبه فراموش کرد دستش را جلوی دهنش بگیرد و قریب یازده مرتبه تقریبا آب از ششمش سراسیر شد وقتی که مارگریتا تمام کرد گفت ببخشید خوب نزدم بعد از اتاق رفت بیرون شاید نیم ساعت طول کشیدان وقت را تنش کرد و آمد از من خداحافظی کند روز جمعه بود و میخواست به اتفاق مارفینگا به سینما برود من هم بلند شدم و با هم از خانه بیرون آمدیم مارفینگا توی حیاتی ایستاده بود من آنها را تا دم سینما همراهی کردم در راه به من گفت امشب خیلی بد زدم. من وقتی مجبور میشوم نمیتوانم خوب بزنم. من متوجه بودم که شما عصبانی بودید. من وقتی که مجبور میشوم نمیتوانم خوب بزنم. در عوض روز جمعه دیگر بعد از ظهر مارفینکا میآید به خانه ما. به پدرم هم گفتم. او حرفی ندارد. با مارفینکا با هم چهار دستی برای شما دست ما کبره را روی پیانو می زنیم فوری به یادم افتاد که باز رجب و فانجا خواهد بود و باز خمیازه خواهد کشید و باز مرا عصبانی خواهد کرد. تصمیم گرفتم کاری بکنم که تا آن وقت نکرده بودم. ببخشید، من این جمعه گرفتار هستم و نمی بیایم. چطور؟ چه گرفتاری دارید؟ مارگریتا تعجب کرد. این اولین دفعه بود که من تقاضای او را رد کردم. بسیار خوب، جمعه دیگر. حالا تا جمعه دیگر را بعد معلوم میکنیم. مارگریتا حد زد که من مقصودی دارم. آن روز را دیگر ما به سکوت گذراندیم. چند روز بعد؟ وقتی ما باز تنها بودیم از من پرسید: چرا آن شب دعوت مرا رد کردی؟ شما نمیدانید چرا؟ شما آن شب وقتی مشغول پیانو زدن بودید، قیافه رجبوف را ندیدید. شما با این آهنگ ها صورت تازه از زندگانی را به من نشان می‌دهید و نمی‌خواهم یک چنین خوشبختی را بی بیخودی از دست بدم. مدت‌ها بود که می‌خواستم از شما تقاضا کنم این دنس مکابره را برای من بزنید. پس چرا تقاضای مرا رد کردید؟ شرطش آن است که آقای رجبوف نباشد. به نظرم حسودیتان میآید. من سرخ شدم و نزدیک بود که اشک در چشمایم پر شود اما خودداری کردم این مذاکرات در ضمن درس رد و بدل شد من چون فرانسه حرف می زدم بیشتر جرأت داشتم مارگریتا هم آنچه می به فرانسه میگفت و بقیه را به فارسی بیان میکرد. این اولین دفعه ای بود که مارگریتا ولو به طور تمسخور اشاره به احساسات من کرد نه حسودی هم نمی شود اما وقتی شما پیانو میزنید نمیتوانم خمیازه های او را تحمل کنم مطمئن باشید که منم از این مرتکه بیزار هستم اما قبول این شرط برای من دشوار است سعی می کنم که مطابق میل شما رفتار کنم شما از تمام نکاتی که در بین ماست اطلاع ندارید لزومی ندارد من منتظر فرصت هستم. اما این فرصت مدتها به دست نیامد. حتی یک شب که با مارگریتا و پدرش در سینما بودیم به مارفینکا و مادرش برخوردیم. با هم به کافی استریا رفتیم. آن شب باز اشاره به تقاضای من شد. من باز شرط خود را تکرار کردم. راستش این است که من میخواستم یک مرتبه مارگریتا را آزاد ببینم. میخواستم که او در تحت تأثیر و فشار رجبوف نباشد. میخواستم ببینم که مارگریتا وقتی اسیر احساسات خودش چه چجوری است. از همین جهت، چون میدانستم که دست مکبره در او بیش از هر چیزی تأثیر کرده است، میل داشتم که او زیر فشار این دکه موسیقی باشد. میخواستم ببینم که مارگریتای حقیقی چگونه احساس میکند. اینجا من مجبور شدم برخلاف رویه معمولی خود کلام مرتزا را قطع کنم و از او پرسیدم من فقط یک چیزی را خوب نمیفهمم. با وجود تمام این شور و شیفتگی که در تو وجود داشت مارگریتا هیچ واکنشی هیچ نشانی، هیچ چیزی، بر براخره تمایلی یا بیعلاقگی انزجاری ابراز نمیکرد در این که تو دوستش داشتی و خواهی نخواهی محبت تو از تمام حرکات و رفتار تو پیدا بود در این که حرفی نیست من دوستش داشتم و هنوز هم دوستش دارم از همین جهت حالا مرگ را دوست دارم مقصود تو این است که منظور من چه بود چه میخواستم آیا او هم مرا دوست داشت؟ نه هیچ وقت اثاری نکرد نشانه و علامتی به من نشان نداد ما با هم مثل دو رفیق بودیم اما ارتباط ما از این حد سطحی تجاوز نکرد عجله نکن جواب این سوال تو را خواهم داد شما نمیدانید چه شیرین است. وقتی آدم می تواند گذشت داشته باشد فداکاری کند برای فکری آرزویی، برای ایمان و عقیده برای هر چه شایسته از دست دادن زندگی است این زندگی پرملالت و یک نواخت من چه ارزشی داشت آماده برای مرگ بودند زندگی را شیرین می کند. اما مارگریتا چه واکنشی می‌کرد؟ الان می گویم. ما در ضمن درس روسی کم کم دست به کتاب ادبی روسی زده بودیم من خواهش کرده بودم بعضی از تکاهای و گین و تعلیف پشکین را پیش مارگریتا بخوانم و او قبول کرد ولی آنکه فهمان برای من مشکل بود ولی چون ترجمه فرانسویان را خوانده بودم با آسانی می توانستم مطالب آن را تعقیب کنم وقتی به مراسله تاتیانا رسیدیم من آنقدر متأثر شدم که تقریبا می توانم بگویم اختیار از دستم در رفت مارگریتا پیبرد که این مراسله در من تأثیر فوق العاده کرده است و گفت تاتیانا را دوست دارم و میل داشتم مثل او می بودم من گفتم شما هرگز نمیتوانستید تاتیانا باشید. کی میتواند مثل تاتیانا فداکاری کند و یک چون این از اس خودگذشتگی نشان دهد؟ به مردی که آن مرد را او دوست دارد، صریحا اقرار و اعتراف کند که من تو را دوست دارم. تاتیانا حس میزند که این مرد جواب احساسات او را نمیتواند بدهد و یا نمیخواهد بدهد. باز به یک چون این مردی میگوید و می نویسد که من تو را دوست دارم. و تمام هستی و نیستی، تمام رازی که زندگانی من بسته آن است، پیش پای تو که معشوق من هستی می اندازم. من عقب کلمه ای می میگشتم و نمی آفتم. یک پداکاری و گذشتی را من در شما سراغ ندارم. مارگریتا خندید، مرا میخواست مسخره کند، و یا اینکه مثل معمول میخواست شادی بخش کند، و هر جا هست، خوشی بیافشاند و غمزدگی زدگی مرا و یا اینکه میخندید که به من چیزی نگفته باشد. نه من این تاتیانا را نمیگویم. من مقصودم اون وقتی است که تاتیانا زن جنرال شده است، شما هنوز نخانده اید. نمیدانید. نه اشتباه میکنید. من خاندم. آن تاتیانا هم شما نمیتوانید باشید. حالا که زن جنرال شده است. زن جنرالی که دوستش ندارد باز حاضر نیست وقتی آن معشوق دوره های گذشته پیش او می آید معشوقی که روزی به مهر او و, و خود او پشت پا زده و اینک پشیمان است و دوستش دارد تاتیانا زن جنرال در ظاهر با عظمت و با افتخار در باطن دل شکست و مسترب تاتیانا حاضر نیست که با این معشوق زندگی کند و شوهرش را جواب بگوید شما قادر به یک چون این نیستید باز خندید و اما در خنده حرفی زد که مرا به فکر انداخت آن روز پی به همیت کلماتش نبردم آن روز من خیال کردم که چون خون من به جوش آمده است برای آرامش من این جمله را گفته است به من گفت از کجا معلوم است بلکه من دارم فداکاری بزرگتر می کنم همه چیز را که نمی شود گفت بگذارید این صفحه را تمام کنیم بالاخره آن فرصت دست داد یک روز جمعه بعد از ظهر من مهمان مارگریتا و پدرش بودم مارفینکا همان جا بود تمام صبحان روز من در خانه مندم هوا سرد و یخوندان بود فقط چند دقیقه روزنامه های روز را که راجب جنگ بود خواندم بعد تمام روز صفحه دانس ماکابره را که مدت ها بود خریده بودم گوش دادم در کتاب های هنری تصویری که هلباین این تصور قرون وسطا را مجسم کرده است مطالعه کردم نزدیک ساعت دونیم نیم بعد از ظهر از خانه خارج شدم پیاده رو به خانه مارگریتا رفتم باد سردی میوزید هوا خشک یخبندان کامل بود ساعت سه بعد از ظهر بود با وجودی که هوا آفتابی بود باز یخ زیر پای آدم قرچ و خروچ صدا میکرد. مردم همه از زور سرما در خیابانها می دویدند. من آنقدر با خودم مشغول بودم که اصلا توجهی به آن نداشتم من فقط در فکر مارگریتا بودم و پهلوی خودم فکر می که چرا دنس مکبره در او آنقدر تاثیر کرده است او هر جا که هست خوشی و صفاست آرامش و شادمانی خنده و جانبخشی بخشی او را با مرگ چه کار است دست مکبره رقص مردگان رقص مرگ در او چه تأثیری میتواند داشته باشد چقدر آدم از زندگی بیزار باید باشد تا از رقص مرگ از رقص استخوان بندی های مردگان لذت ببرد و آرزویان را بکشد چرا پریشان بودم؟ من تمام روز هفتهها، ماهها ماه ها بود زوغ میکردم یک روز بعد از ظهر با مارگریتا باشم رجبوف حضور نداشته باشد حتما به رجبوف دروغی گفتند که امروز خانه نیستیم و او را دک کردند اما اگر رجبوف با وجود این بیاید چه می شود؟ علت استراب من چه بود؟ هنوز نشنیده دل من میدبی وقتی وارد اتاق شدم احساس کردم که مارگریتا غم زده است نه اینکه خندید بلند و به آهنگ سکه نقره صدایش تنطنه میانداخت. چه خوب شد زودتر آمدید؟ دوست من هنوز نیامده است مرفینک الان میآید. من کاملا تنها بودم. پدرم ناخوش است حالش خوب نیست پیش ما نمیآید. من صبح تا به حال گرفتار بودم. اما حالا حالش بهتر است. ممکن است تا یک ساعت دیگر بیاید. سردتان است بفرمایید کنار بخاری. اگر پدرتان ناخوش است اجازه بفرمایید مرخص شوم. ابدا بمانید. من خیلی خوشحالم که شما آمده اید. یک ریز می گفت. با خودش صحبت می کرد. از من می پرسید. ما تنها بودیم. چه خوب موقعیست خوب فرصتی است به او بگویم که تو برای من چه هستی چه مقامی را در زندگی من اشغال کردی به او بگویم که زندگی من تا به حال فقط کار آسان کار یک شکل اما پر از زحمت بود به او بگویم که زندگی من فقط درد، زحمت، زجر و از همه بدتر بدون جنبش و بدون تغییر بود به او بگویم که من تا به حال فقط مصیبت‌های زندگی، گرسنگی مردم، شکنجه بیچارگان، کشتار و ظلم و زور میدیدم. به او بگویم که هر روز از خواب بلند شدن، مقصود و هدفی در زندگی نداشتن، دست روی دست گذاشتن، هی برنج و هی روغن مصرف کردن برای من کشنده بود. و حالا از وقتی که با تو آشنا شدم دنیای دیگر بر من جلوگر شده است به او بگویم که دیگر حالا زندگی موسیقی و هنر است به او بگویم که زندگی من تا به حال بدون هنر بود و اگر هنری داشت بدون زندگی بود و جان نداشت به او بگویم که تو دنیای حقیقی را به من نشان دادی به او بگویم که زندگی مرا قابل زندگانی کردی به او بگویم که دوستی تو به من امید و آرزو می دهد. آه چقدر چیزها میخواستم بهش بگویم میخواستم به او بگویم که من دوستت دارم زبانم بند آمده بود و فقط با نگاه چشم میخواستم این مطالب را به او حالی کنم مارگریتا همیشه از نگاه‌های فرو رونده من می‌ترسید. منتها نشان نمیداد. اما امروز از هر روز بدتر بود. او فقط حرف میزد، یک ثانیه را به سکوت نمی‌گذراند. از سکوت می‌ترسید و یا می‌خواست روحش را رو از من پنهان کند، جانش را می‌خواست با کلمات بپوشاند. آن وقت ماروینکا آمد. با هم روسی حرف زدند. دیگر کمی میفهمیدم. چای و شیرینی آوردند بعد هر دو نشستند پشت پیانو. دانس مکابره یعنی رقص مردگان یعنی رقص مرگ به خط درشت روی نتهای پیانو نوشته شده بود. اتاق ساکت بود. صدای خشخش نتها شنیده میشد. چند ثانیه سکوت محض بود. من آرنجم را به سه گوشه میز تکیه داده هوش و حواسم پیشانها بود آهنگهای اول وحشت در من تولید کردند مکبره بودند هیچ لغتی در فارسی جایان را نمیگیرد. شوم بودند من خوب از میان آهنگها جان کلام را میشنیدم. ساعت دوازده مرتبه صدا می کند. از این ساعت تا صبح مردگان آزادند آزاد آزاد نیم شب است چه شب وحشتناکی هر شب همینطور سهمگین است برای آن که زندگی ما سهمگین و جان سوز است آنها دیگر جانی ندارند که بسوزد مردگان جان ندارند برای اینکه ما مثل هم نیستیم اما مرده ها مثل هم هستند از نیمه شب تا بانگ خروس مردگان جشن میگیرند جشن آزادی، جشن رهایی از دردهای زندگی همه با هم برابرند نه شاه است و نه گدا نه پیر است و نه جوان نه دختر است و نه پسر نه زن است و نه مرد همه مرده همه استخانبندی هستند کسی جقه بر سر کسی شندره برتن ندارد دست به دست هم میدند و میرقصند. مرگ که در همی آنها مشترک است جزی از کل آنها خود آنها مرگ استخانبندی ها را به رقص آورده است مرگ با قلم استخان پا که روزی ساقپای دخترکی بلند بالا بوده روی جمجمه دیوار کلفتی برای آنها زرب میگیرد. ساعت دوازده که میشود، شود از بله های گور بیرون میآیند و می رخصند. مرگ که خود آنهاست برای آن که دیگر فرمانده و فرمان برداری نیست آهنگ ملایمی می نوازد. مردگان گرده هم دست میافشانند و پای می گوبند. این کنوز روی استقانهای صورتش نیشخند دیده میشود. این در زندگی غازی بوده و به دردها و های محکومین پوسخند میزده. اما او تازه مرده است به زودی این اثر در کله او محف خواهد شد ما فک و گونه دیگر این اثر باقی نخواهد ماند برای آن که او دیگر مرده است و آزاد است اینکه استخوانهای پشتش گوش دارد او در زندگی پشت خم کرده سرفرود آورده است اینجا دیگر احتیاجی ندارد برای اینکه آنچه او را از دیگران جدا می کرد، احتیاج زندگی روزانه دیگر وجود ندارد نه است، نه گریه، نه شادی و نه غم، نه دلواپسی است و نه امید و نه افاده است نه تخییر نه ظلم و نه اجز و لابه نه است و نه سیری. هیچ چیز نیست جز مرگ جز آزادی آیا این مرگ و این آزادی از زندگی دربند بهتر نیست آیا این مرگ به هزا نیست که قاضی به زجر محکومش پوسخند بزند آیا این مرگ به نیست که محتاج پشت خم کند آیا این مرگ به نیست که آدم در بند باشد از همین جهت است که آنها جشن گرفتند رقص می برای آنکه آزادند مرگ با قلم پای دختری روی جمجمه کل گندهی برای آنها سرود رقص مردگان را می نوازد. وای، این آزادی هم محدود است. خروس ورود صبح را بانگ می زند. همه ها در هم می پاشند. جرن. این منظره را من در موسیقی که مارگریتا و مارفین کامی نواختند می دیدم. وقتی تمام شد هر دوی آنها رنگ پریده بودند به من نگاه می کردند. من ماتم برده بود مرتزا نفس بلند و عمیقی کشید قسمت های آخر را فل بداهه می گفت دیگر توجهی نداشت به اینکه کسی میشنود یا نه شکی نبود در این که هنوز زیر فشار و کابوس آن روز بود دیگر هیچ یادم نیست که آن روز چه اتفاق افتاد میدانم که تمام آن شب مثل مرده تا صبح خوابیدم و با وجود این صبح روز بعد هنوز پریشان و عصبانی بودم فقط یادم میآید که روز بعد دائما صورت رنگ پریده مارگاریتا پس از آنکه که دنس مکبره را تمام کرده بود، جلوی چشمم می لخزید. یقین کردم که مارگریتا، آن دختر خندان و فره که من تصور میکردم کردم نیست و زیر این گونه لبهای خندان سری سر پنهان است. من پریشان بودم که چرا تا به حال او را نشناختم. روز بعد در حدود ساعت شش بعد از ظهر در اتاقم نشسته بودم و با صفحه دنس مکبره را می شنیدم که ناگهان دیدم گلیمی که در شیشه دار اتاق مرا از سرمایه شدید و یخبندان جدا میکرد به وسیله دست کوچکی که در دستکش جیری بود تکان خورد. دست چندین مرتبه به شیشه تک تک کرد و بعد داخل اتاق شد مارفینکا توی اتاق من ایستاده بود از غیافش پیدا بود که اتفاق تازه افتاده است. او فارسی خوب بلد نبود و من آنقدر زبان روسی یاد نگرفته بودم که بتوانم با او صحبت کنم. اما این را فهمیدم میخواست به هر زبانی شده مرا وادار کند هرچه زودتر به کمک مارگریتا بشتابم. اما چه اتفاقی افتاده چه شده چه کمکی من میتوانم بکنم نفهمیدم و با سرعت تمام از خانه دویدم بیرون. چون سر خیابان اتومبیل و دروشکه پیدا نکردم سرد بود و دروشکه‌ها لنگ کرده بودند و مارفینکا با کفش پاشنه بلندش نمیتوانست روی زمینهای یخبسته بدود به او گفتم من می‌روم و شما خودتان تنها بیایید نصف بیشتر راه را دویدم و به بالاخره سوار اتوبوس شدم بعد درشکه ای پیدا کردم توی دروشکی یادم افتاد که آن کرمه روسی که مارپینگاه هی تکرار میکرد و من نمیفهمیدم پارسیاش خودکشی بود. مارگریتا میخواست خودکشی کند من میتوانم جلوگیری کنم. چشمایم سیاهی میرفت. خودداری کردم. به چی اصرار کردم که تونتر برو میگفت پایم روی یخلیز لید از این تونتر نمیتوانم بروم. کمی تونتر فقط کاری بکن که من زودتر برسم. سر خیابان نادری از درشگ پیاده شدم. نمیخواستم که مردم متوجه من شوند. نزدیک ساعت هفت دم در خانه آنها رسیدم. هوا تاریک بود. در خانه باز بود. من وارد حیات شدم. از پلهها ها که با این آمدم وحشت کردم. خیال کردم دیوانه شدم. رجبوف. وسط حیات روی زمین افتاده بود. از سرش خون میامد، با وجود تاریکی هوا خون را تشخیص دادم مارگریتا با چشم‌های بیحالت، صورت کشیده دستهای رو به عقب فریاد می‌زد به در مارگاریتا در لباس خواب دستش را به نرده پلکان گرفته بود و می‌خواست پایین بیاید مارگاریتا زبانش بند آمده بود من من, من. من او را بغل کردم بردم توی اتاق مثل بیت می لرزید. پرسیدم تو کردی؟ تو کشتی؟ من من من پدر مرگریتا را کشیدم توی اتاق اهمیت ندارد شما هم آرام باشید من او را فاری میبرم به مریضخانه بعد رو کردم به مرگریتا مرگریتا این را دیگر به کسی نگو. هیچ وقت قول به من بده که این حرف را تکرار نکنی. مارگریتا، اگر مرا کمی دوست داری قول بده که به کسی نگویی. اگر پدرت نفهمیده است نگذارید بفهمد. برو استراحت کن. من مارگریتا را در آغوش گرفتم. دست و صورت او را بوسیدم. بعد باز سکرار کردم. مارگریتا من او را میبرم به مریض خانه چیزی نیست خوب می شود از خانه پریدم بیرون عقب به درشکه دیدم مارفینکا دارد می شما هم بروید حالش خوب نیست رفته از بخوابد درشکه پیدا کردم برگشتم توی حیات و فریاد کردم مارگریتا مارگریتا به ایچ کس نگویی به ایچ کس بدن نیمجان رجبوف را کل کردم و او را از خانه بیرون بردم چه میخواستم بکنم نمیدانم فقط وقتی متوجه شدم که دیدم مردم دور من ایستادند و پاسبانی مرا جایی برد هرچه از من میپرسیدن میگفتم من کردم، من کشتم و حالا میگویم من کردم و چه شیرین است گناه کسی را به گردن گرفتن و چه شیرین است بالاخره هدفی و مقصودی در زندگی داشتند؟ مرتضافه دیگر حرف نمیزد در عالم خواب بود؟ مثل اینکه تمام اینها را خواب میدید؟ میفهمیدم که چرا باذوق و شوق به پیشواز مرگ می رود؟ برای زندگی پوچش هدفی پیدا کرده بود.